شرکت آرنا حیات دانش یک مجموعه دانش بنیان ایرانی است که در سال 1393 توسط گروهی از متخصصان جوان تأسیس شد. هدف اصلی آن ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق تولید داروهای مؤثر و با کیفیت بود. این شرکت با تمرکز بر تحقیق و توسعه، انتخاب داروهای نوین و بازاریابی علمی، جایگاه قابل توجهی در صنعت داروسازی کشور کسب کرد. رشد نیروی انسانی از سه نفر در زمان تاسیس به حدود 155 نفر نشان دهنده گسترش فعالیت ها در حوزه گوناگون است. آرنا حیات دانش در تولید داروهای تخصصی مانند داروهای ضد انعقاد، داروهای دیابت و داروهای نوترکیب نقش فعالی داشته و در برخی موارد برای نخستین بار در ایران این داروها را تولید کرده است. فرایندهای توسعه شامل تحقیق بر روی پروتین های پیچیده برای درمان سکته مغزی و بیماری های قلبی می شود. ساختار سازمانی بر پایه خلاقیت تصمیمگیری جسورانه و اجرای دقیق بنا شده و فعالیت های علمی، فنی و تجاری به صورت هم افساپگیری می گردد تولید اولین داروی ضد انعقاد ایرانی از فعالیت های شرکت است تولید داروی دیابت و انتخاب عنوان شرکت دانش بنیان و تکمیل تحقیق بر محصول نترکیب از سایر فعالیت های شرکت می باشد. شرکت با چهل محصول متنوع از حسگرها و پمپها، تا راکتورها، کمپرسورها، سمپلرها، دستگاه های کروماتوگرافی، آنالایزرها، ملزومات شیشه آزمایشگاه و انواع قرص و ویال تذریقی. نیازهای صنایع دارویی و آزمایشگاهی را پوشش می دهد. وضعیت شرکت فعال و از نوع سهامی خاص دانش بنیان است. سرمایه اولیه 3 میلیارد و 887 میلیون ریال بود، افزایش اخیر در 1404 به 11 میلیارد و 457 میلیون ریال صورت گرفت. شرکت واقع در استان آلبورز، شهرستان ساویج بلاق قرار دارد، و قرارداد تخصیص زمین در شهرک صنعتی دارویی برکت را ثبت کرده است از زمان تاسیس مجموعاً حدود پانزده میلیون یورو ارز خارجی دریافت کرده که حدوداً معادل حدود 732 میلیارد ریال است شرکت دارای 44 علامت تجاری ثبت شده از 1393 تا 1403 است احصا گواهی دانش بنیان در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان تاسیس انجمن و مؤسسه غیر دولتی خیریه و مجوز تأسیس واحد تولیدی و کارت بازرگانی جز سایر فعالیت های شرکت است. مدیران بدین شرح هستند: بابک خوئینی، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آنیتا خوینی، عضو هیئت مدیره. امیریه مرگدری، عضو هیئت مدیره. حمید مفرح، عضو هیئت مدیره. بهروز وزیری، رئیس هیئت مدیره. سهامداران اصلی بابک خوینی، مسعود حسینیان و بهنام زادبگان هستند. خلاصه صورتهای مالی بدین شرح است. رشد قابل توجه در سود خالص، دارایی سرمایه و فروش. دارایی از ده هزار میلیارد به بیست هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بدهی ها پس از افزایش در 1403 کاهش یافت. سرمایه از نه میلیارد به یازده هزار میلیارد ریال ارتقا یافته است. تعداد کارکنان، فروش خالص، موجودی ریالی و ارزی همه روش کردند. عمدتاً در بانکهای ملی و خاورمیانه فعالیت مالی دارد. تسهیلات بانکی مجموع 5 هزار میلیارد ریال برای شرکت اصلی با بانک اقتصاد نوین بوده است. شرکت‌های مرتبط مانند زیست آروند فارم با 8 هزار میلیارد ریال تسهیلات و مطالباتی بودند. برخی شرکت‌ها فعالیت مالی محدودی دارند و دیگران بدون اطلاعات بانکی هستند. این شرکت با رشد پایدار، نوآوری و تمرکز بر سلامت نقش مهمی در صنعت داروسازی ایران ایفا می‌کند.